بسم الله الرحمن الرحیم کتاب تصریف زنجانی هستیم با توضیحاتی مختصر در درس قبلی مزاعف را توضیح دادیم فصلون فصل دیگری را میخونیم فل معتل این فصل موضوعش در رابطه با معتل هست تا اینجا کار ما فلهای صحیح رو خاندیم صحیح خودش بر سه نوع تقسیم میشه سالم محموز مضاعف سالم ها رو ابتدا خاندیم مضاعف رو در درس قبلی خوندیم محموز رو بعد از موتل میخونیم به خاطر که توش یک سریع رخ میده و اینجا در این درس موتل رو میخونیم خودش از آن جایی که تعریف می کند روی اصل بحث و هو ما کان احد و اصولی حرف علت. میگه معطل آن است که یکی از حروف اصلی آن حرف عله باشد توجه داشته باشیم یکی از حروف اصلی حرف اله باشد. مانند، وهي وعبارة هروف اللي هست الواف والياو والألف واف ياو والألف بس اگر فيلي يا اسمي يكي از حروف اسيش واف يا ياو يا ألف بود ان اسم يا فيلي مؤتل هست وتسمى حروف المد واللين اين حروف حروف مد واللين هم جفت مشاو وَالْأَلِفُ حین تَكُونُ مُنْ انواع او اَوْيَائِن میگه الف که جزو حروف هست در اصل یا واف بوده یا یا الیف در این هنگام قلب شده است از واف یا یا وَانْوَاعُهُ سَبْعَتٌ انواع مُوتَل هفتا بی باشن هر اسم یا فعلی که یکی از حروف اصلی آن ال باشد بهش میگن معتل و حروف ال هم واو یا الف هستند انواع معتل هفت هستن چرا چون اگر حرف اول اگر اون فعل یک حرف ال داشت و حرف اولش بود پیش میگن معتل الفا یعنی اون که فا فعلش اولین حرفش حرف ال هست معتل الفا بش میگن ده همون مثال اگر حرف بود متلو الفا در وعده. وعده زیر فعلش اونی که زیر حرف بهش میگن فعل, فعل. اونی که زیر که زیر لام هست، بهش میگن لام الفعل حرف فعلی رو می الفعل و لام تشخیص می این شیوهش زیر فعل اونی که زیر فا باشد بهش میگن فاول فعل اونی که زیر عین قرار بگیرد بهش میگن عین الفعل و اونی که زیر لام قرار بگیرد بشم میگن لام الفعل مانند کتبه زیر فعلش بگیرد کاف میشه فاول فعل است تا میشه عین الفعل با میشه لام الفعل حالا اگر فاول فعل فعلی فعل حرف بود، بشم میگن مثال پس موتل هفت نو هست. ممکن است فعل فیلش حرف اله باشه بهش میگن معتل یا مثال ممکن است اینو فعلش حرف عله باشد بهش میگن معتل الید یا اجوف ممکن است لام حرف عله باشد که بهش میگند ناقص و ممکن است دو تا حرف اله داشته باشد که بهش میگند لفیف مانند وقا دو تا حرف عله دارد هر یکی از این انواع در بحث خودش بحث خواهد شد لذا بحث رو طولانی نمی کنیم مستقیم میرویم رویم اول المعتل المعتلل نوع اول از معطلات معتل فا هست اونی هست که فاء فل آن حرف الله هست مانند وعده در وعده که زیر فعاله می نوستیم وعده حرف الله هست تصمیش می معتل متلل ویقالو له المثال به موتل الفام مثال هم گفته میشه ل مماثلته صحیح فی احتمال الحركات چون مثل صحیح هست مثل ذربه صرف میشه ماضی مثال مثل صحیح صرف میشه الوطن لحظه علمی بحث تصریف چیزی دیگه هست ولی ما؟ طبق کتب ابتدایی میگن صرف میشه اصطلاحشون استفاده میکنیم وگرنه در اصل صرف منظور از صرف همون ساختهای مختلف فعل رو میگن مثل ساخت ماضی، ساخت امر، ساخت مزاره اینو میگن تصریف پس هنگام متصل بودن به زمائر مسند بودن به زمائر مثل صحیح است بهش میگند مثال ضربه زربا زربو و عدا و و در ماضی دقیقاً چنین است عمل وا فتحذف قواعد رو داره توضیح میده قواعد فارو بیان میکنه عمل وا فتحذف من الفعل المضارع الذي الا يفعله بکسر العينی میگه وا یعنی زمانی که مثال واوی بود مثل وعده ما ما دوتا مثال داریم یا مثال واوی یا مثال یائی مثال علفی دیگه نداریم یومونه این مثال یائی ای هست و این مثال واوی هست یعنی حرف اله در و واو هست در یومونه یا هست میگه زمانی که متل ما متل مثال ما متل واوی بود خَدْ تُحْذَفُ من الْفِعْلِ الْمُدَارِئِ واب از فعل مزاره حس میشه اَنَا زمانی که مزاره بر وزن مزاره اون مثال بر وزن یفئلو باشه در مزاره حس واب حس میشه مانند مش وعده دیگه مزارش نمیشه یو عیدو واب حس میشه میشه یعیدو وعده یعیدو بکسر الان میگه زمانی که این الفعل کسره داشته باشه در مزاره مزارعی که بر وزن یفعی رو باشد این الفعلش کسره باشد پس قاعده اول که واغ در مزارع مثال واوی حس می شود زمانی که مزارع بر وزن رو باشد این کسره داشته باشد و من مصدره لذی علا فعله و از مصدر هم حس میشه زمانی که بر وزن فعل فعله باشه فعلتون مانند وعده مصدرش اگر بر وزن بعضی کتاب میگن بر وزن فعل باشه این کتاب میگه بر وزن فعلتون باشه یعنی تارو اضافه میکنه مانند وعدتون کتاب سرفمیر میگه بر وزن فعل باشه اون موقع واو هست میکنیم در آخر تا میعهاریم و این کتاب بگونه ای دیگه توضیح میده میگه زمانی که بروزن فعلتون باشه اون میگه بروزن فعل این میگه بروزن فعلتون خب اینجا دیگه میگه فعال فعل هست میشه اونجا هم میگه ولی اینجا میگه بروزن فعلتون پس زمانی که بروزن فعلتون باشه مصدر واو هست میشه در مثال واوی وعدتون یا وعد میشه عیدت وزن میشه زینتون وصل میشه صلتون سلی رحم همون وصل هست وصل کردن زینتا ارشیهی وزن ارش ولی واف از اولش هست شده در عادیس اومده پس در مصدر هم واف هست میشه زمان که بر وزن فعل یا فعلتان باشه و تسلمو فی سائری تصاریفی در تصریف های دیگر منظور در امر در ساخت اسم فائل در ساخت اسم مفعول سالم میموله حذف نمیشه تقولو وعده ساخت مازیش میشه وعده مزارش میشه یعیدو در مزاره میبینیم که حذف هست در مصدر هم که عیدتون هست میبینیم که عدتن مصدرش حذف هست و وعدن اسم فائلش میشه فهو واعد واعد ببینیم که واف سالمه و ذاکه معود در تصریف اسم مفعولش یا در ساخته اسم مفعولش هم سالم هست و در امر هم حسف هست چون امر از مزاره درست میشه عید در نهی هم لا تعید حس هست چون نهمون فعل مزاره ولی نه شده پس در مزاره در مزاره حسف میشه و دوام زمانی که بر وزن یفعیلو باشد بر این اساس مجهول میشه بر وزن یفعلو هست در مجهول بر میگرده میشه یوعدو که جلوتر توضیحش میده و كذلك و همچنین ومیق و میق یا میق مثال دیگه یارد است فایزا ازیلت کسرتو ما بعدها میگه زمانی که کسر حذف شود از بین برده شود ما گفتیم زمانی واو در مضارع حذف میشد که بر وزن یفعلو باشد یعیدو اگر کسر از بین بره واب هم جاش برمیگرده مثلا در مجهول اعیدت الواب المحفوفه واب محصوفه برمیگرده ماننده نحو لم یوعد وعده مزاره معلوم میشه یعیدو مزاره مجهول میشه یوعدو چرا؟ چون اینجا عین فتحه داره اگر عین و الفل کسر داشت واب بر نمیگشت ولی چون کسر از بین رفته حرکت دیگه اومده لذا واب برمیگردد. و تصف و سوال دیگه آیا زمانی که مزاره بر وزن علو باشد باز هم معاف هست میشه میگه نه و تسب ت فی وفی بالفتحی علو ثابت میگوونه در مزاره زمانی که وزن یفعلو باشد بالفتحی یعنی فی الف فلفته داشته باشد مانند کواجله یا و مانند واجله یا جلو در یا و جلو یا جلو چرا واب هست نشده؟ چرا نشده؟ یا جلو به خاطر این که اینجا اینالفهل ما کسره نداره و فتحه داره امرش میشه ای جل امر از مزاره درست میشه یا جلو از تاو جلو مزاره حاضر سیغش میشه تاو جلو تا رو که واف ساکن همزه میاد میشه او جل همزه به خاطر این که اینالفهل فتحه داره همزه کسره میگیره در ساخت امر قبلا خاندیم علامت مزاره رو حصل می اگر ساکن بود حرف بعدی همزه وصل میاریم برای مشخص کردن حرکت و همزه همزه وصل این الفل رو نگاه می اگر فتحه یا کسر داشت همزه رو کسر می دیم اگر زمه داشت همزه را زمه می دیم در و جلو این فتحه داره پس همزه امرش همزه وصلش کسر میگیره. میشه می میشه چی جل در اصل ولی واب ساکن ما مکسور قاعده صرفی است که تبدیل بیا می شود ایجل اصله افجل ای میگه ایجل اصلش افجل ای بوده قلبتل وابو یا انل سکونی ها و ما قبله به این علت واو تبدیل بیا شده است که واو ساکن بوده و ما قبلش مکسور قاعده داریم هرگاه واو ساکن باشد ما قبلش کسره تبدیل بیا می شود مانند امر توجل که در اصل می شود ایو جل و ایو تبدیل بیا می شود می شود ای جل فا انضم ما قبلها عادت الواب حمزه وصل چرا بشون میگن حمزه وصل یعنی اگر در ابتدا بیاد حمزه خانده میشه چون با سکون ما حرف ساکن رو بخوریم حمزه وصل رو آوردیم حالا اگر در وسط جمله قرار بگیرد دیگه نیازی به حمزه وصل نیست ما اون حرف ساکن رو با ما قبلش میخوریم اگر ما قبلش زمه بود همزه وصل که خونده نمیشه میگه واف دوباره برمیگرده مانند این که کلمه ایجل در وسط جمله قرار بگیره که ما قبلش زمه باشه اینجا واف دوباره برمیگرده ایجل که در اصل بوده افجل واب بر میگرده تب... یا تبدیل به وابش میشه مانند یا زیدو جل یا زیدو جل اصل بوده او جل همزه خونده نمیشه قبل از واب اگه زمه باشه او خونده میشه میشه یا زیدو جل یا زیدو جل یا نوشته میشه اما واب خونده میشه طلفا و بل واب واب خونده میشه و تکتابو بل یا اما یا نوشته میشه این در تمام حمزه وصلها این قائده جزو است، عربیست قوائد عربی عربیست و حکمش چونین هست همزهای های وصل در ابتدا خانده میشوند در وسط به دلیل این که ما قبل حرکت وجود داره همزه دیگه کلن خانده نمیشود. و تثبت و فی یفعلو به ضمی میگه واب زمانی که مزاره بر وزن یف هم باشد باز هم ثابت میموند و تصبت و فی یف میگه واو ثابت میموند همچنین زمانی که مزاره بر وزن یف اولو باشد به دم میبازمه ماننده میبینیم که در یاوجوه واو حصف نشده چرا؟ چون این الفل زمه داره در یک حالت واو مزاره در مثال حصف میشه زمانی که در وزن یفئلو باشد یا جلوتر هم یه چیزه که میگه پس وجوها یوجوه امرش میشه اوجوه نحیش میشه لا تاون جوه وحوظیفت الوامو میگه وام از کلماتی ماننده وطا ایطاو وسعای سعو وضعای ضعو وقعای قعو ودعای دعو میگه در مزارشون حس میشه واغ از یطاؤ، یسعو، یداؤ، یقاؤ، یداؤ حس میشه در حالی که اینجا این الفیل فتحه داره قبلا گفته بود به شرطی واغ حس میشه بود که این الفیل فتحه کسره داشته باشه در یسعو، یطاؤ، یماؤ، یقاؤ، یداؤ فتحه وجود هستند چرا حس شده؟ میگه لی انها فیل اصلی یفعلو بکسره این نوع فیلها در اصل بر وزن یفعلو هستند با کسره این الفیل ولی کسره تبدیل به فتحه شده به خاطر الیتی ففتحت لحرف الحلق به خاطر این که این هایی که نام بردیم حرف حلق توشون هست واب این الفیل فتحه گرفته به خاطر حرف حلق حرفهای حلق شیشتا هستن همزو هاو هاو خاو عینو غا در یطاو همزه حرف حلقی است. در یسعو این در یدعو این در یقاو این در یدعو این کتاب صرف جوری دیگه توضیح داده میگه اگر مزاره بر وزن یفعلو باشد وابحس میشه میگه همچنین اگر بر وزن یفعلو باشد و حرف حلقی ایل الفل یا لام الفل حرف حلقی باشد باز هم میگه وابحس میشود ولی این کتاب یا ياتاك... کتاب تکمله ابن اقیل چیزی دیگر میگند فقط زمانی واب در مزاره هست میشد که بر وزن یفئلو باشد مانند وعد یا و ورفا یاریثو وعد یا ایدو ورفا یاریثو وعدا یا زمانی که بر وزن یفئلو باشد میگند حسن شود مثال های یتا او یسا او یا دا او و یا قو و یا او را این توجیه میکنن که در اصل بر وزن یفئلو بودند ولی به دلیل حرف حلقی تبدیل به این فتحه گرفته است یا باقو شده در نتیجه واف در مزاره وبعه وسعه وقعه حس میشه وحذف من یذرو چرا از کلمه یذرو؟ واب حصد شده وذر یذرو چرا از یذرو در حالی که ما در یذرو حرف حلقی هم نداریم و این الفل هم فتح هست کسره نیست یا ذرو فتح دارد میگه به معنا یذرو چون معنی یذرو هست ذر اللذین در قرآن اومده ترک کنید پس یذرو چون بمعنی یذرو هست ترک کردن میگه به شهاتر شواهد واب در مزاره حصد شده و اماتو ماضی یدعو و یذرو و مازی یدعو و یذرو را اماتو کشته اند منظور این که یدعو و یذرو فیله های مزاری هستند که از لفظ خودشان مازی ندارند مازیشون رو از بن بردن مازی ندارن مازیشون از لفظ خودشون ندارد به جای و ودعو وذره کلمه ترکه رو عرب ها به کار بردند ترک. پس یدعو و یذرو ماضی ندارند اما تو ماضیه یدعو و یذرو ماضی ندارند از کجا بدانیم که یدعو و یذرو وابی هستند؟ خب اگه یا ای بیگودن فاول فیل در مزاره حس نمی شد یا دعو این یا که علامت مزاره هست فاول فیلی ندارند یا دعو و یا حذف بگو حسف الفای حسبودن فا در یا رو یا دعو دلیلی بر این هستن که اینها وامی هستند. این شد از مثال وامی. و اما الیاو فتثبتو على کل حال میگه اما یا در مزاره در هر حالت ثابت است. مانند یمونه که ماضی هست. مزاره میشه یی منو. سر یی سیرو. یا سی یی اصو. چه بر وزن یفئلو باشد مزاره. چه بر وزن یفئلو. چه بر وزن یفئلو مانند یی منو. یی سیرو. یی اصو. فرقی ندارد. یا در مزاره حسنه شود. پس خوب دقیقت کنیم در مثال اگر مثال وابی بود فاول فل در مزاره حس میشه با همون توضیحاتی که دادیم اما اگر یائی بود حس در کار نیست و تقولو فی من الیایی یا یسره رو اگر میگه به باب افعال ببریم و تقولو فی یعنی باب افعال افعاله مازیه افعال هست افعاله یفعلو افعل افعال, افعال در باب افعال یایی ای به این شکل در میاد ای سر مزارش میشه یو سرو در اصل میشه یو سرو یفعلو سر مازیش میشه بر وزن افعال افعلا ای سر مزارش میشه یو سرو یفعلو یو یو سرو ولی میگه هرگاه یا ساکن باشد ما قبلش زمه تبدیل به واب می شود همانطور که واب ساکنه ما قبل واب ساکن ما قبل مکسور تبدیل به یا می شود واب ساکن ما قبل مزموم یا ساکن ما قبل مزموم تبدیل به واب می شود پس مزارش می شود یو سرو فهو موسران اسم فاعلش موسر هست به قلب الیائی واون میگه یا تبدیل به واب می شود قائده چیست لسک به خاطر اینکه ساکن هست و ما قبلش مضمون پس هرگاه واف ساکن باشد و ما قبلش مضمون یا ساکن باشد و ما قبلش مضمون تبدیل به واف می شود هرگاه یا ساکن باشد ما قبل انزنمه داشته باشد تبدیل به واو می شود مانند های مثال یایی زمانی که به باب افعال بردشان این حالت پیش میاد و فی منهما و اگر مثال واوی و یایی منهما یعنی هر دو تاشون چه وابی چه یایی به باب استفعل برده بشوند و فی افتعله میگه واوی و یایی در افتعله آن دو چی میشن و عدا میشه اتعد ماضیش مذارش میشه یتعدو امر ام چی اسم فاعلش میشه متعد و بقیه ساختها ها، اسم مفولش معد. پس یه قاعده دیگه داری ای داریم که مثال چه واوی باشد چ زمانی که به با باب افتعال برده شود فاول فیل چیا باشد چه بااب تبدیل به تا می شود و تا در تا ادغام می شود. و عدمش میشه اعتعد ید و ال واصله میشه یتصل اتصال. یسره اتصره اتصره اتصار و اتصره اتصره فهو متصرون و یقالو و همچنین گفته میشه ما میتونیم جائزیه که واب و یارو در باب افتعال تبدیل بتا کنیم و تارو در تار ادغام کنیم رانند اتصره و اتعده و جایز هست که واب و یارو تبدیل بتا نکنی و عدا اگر به باب افتعال ببریم و واو رو تبدیل به تا نکنین چی به درمیاد میشه او تاعده او تاعده اف تعله ولی قبل خوندیم مو واو ساکن موقع تبدیل به یا میشد می ای تعد یا تعیدو خب اینجا ادغامش نکرده، یعنی رو تبدیل به تا نکرده. اگر تبدیل به تا میکرد نشود، اتعاد یا تئدو اتعاد. فهوا متاعد اسم فایلش میشه متاعد. و تسرر رو به باب ببریم میشه ای تسرر. یا تسرو فهو فهوا متسر. و هر ماکان متسرن فیه. بله. و حکم ود وده یادو که حکم آب یادو میگه ود ده یادو معنی ده آب ده یادو هست چون ود ده یادو مزاحفه مثل آب ده یادو هست که مزاحف هست. امر ود چی میشه یادو؟ امر میشه از مزاره دوش میشه؟ میشه؟ تودو؟ امرش میشه؟ دو تا امر میتونه داشته باشه وده می وده و ده یا ودو امرش میتونیم بگیم و ده و میتونیم بگیم حمزه وصل بیاوریم بگیم اف دد اف دد که واو ساکن ماقم مکسور تبدیل به یا میشواد میشواد ایدد و الامر ایدد خودش گفته امر و ده یا ودو میشه عیدد زمانی که فک ادغام کنیم اینو در بحث مضاعف خوندیم که در صیغه مفرد مذکر حاضر ما میتونستیم در امرش ادغام و ادغام کنیم مثلا امر یا دو میتونستیم بگیم مدد و میتونستیم بگیم عمدد در ودا یا ودو هم میتونیم بگیم ودا یا ودو میتونیم بگیم ودا و میتونیم بگیم عیدد مانند اق اعبد در یا یعبدو اعبد این بودن از قواعدی که مرتبط به مثال واوی بودند مختصرا قواعد رو توضیح دادیم این نقطه رو از سهنها هرگز نفرانیم که زمانی که مثال چه واوی باشد به باب افتعال ببریم دو حالت درش جائز هست توضیح دادیم و نقطه ای که میخوام اضافه کنم این هست که مطالب رو بدون خط بردن از کتاب گوش ندهید که سودمند واقع نمیشوند آنچنان که باشند موفق و پیروز باشید